فصل دهام بیشعور باز چاک رایت را باز کن و این را بگذار توش شرلی ام در حال انرژی دادن به یک آدم متعصیم اگر بیشعور های مقدس مهاب نمیتونن هیچ چیز خوبی در دیگران ببینن در مقابل ادهیم هستند که نمیتونن هیچ چیز بدی در آدما ببینند ببینن یا دست کم اینطور ادام کنن اینا کودکان ارفان بازن. آدم هایی که در نهایت خوشبینی معتقدند که همه چیز جهان در نهایت کماله و هیچ مشکل بزرگی وجود نداره. در نگاه نخست به نظر میرسه که این افراد بیشعور نیستند و فقط عبله که هن که هر محملگویی رو که به سویشون بیاد باور می کنن. چه با رولز رویس چه بدون او. اونا به طالبینی های هندی و چینی اعتقاد دارن و احتمالاً کمی هم ورزش رزمی یاد گرفتن. شاید گوشت بخورن، شایدم نه. اما اکثرشون آبهویج زیاد می و گاهی هم قهوه تنقیه می کنن. البته بدون شکر. بیشتر اونا لوسنجلسی عرفان‌بازها می‌خوان مدینه فازله ای به وجود بیارن که همه چیز اون در منتهای کمال باشه و بنابراین هر چیز دیگری رو که کوچکترین نقصانی داشته باشه پس میزنند. در دهه 1960 این طرز فکر مد بود. وجود بسیاری از گروه هایی که از اون زمان تا کنون این گونه فکر می‌کنند و جداگانه زندگی می‌کنند در شناخت بهتر بازی مفیده. در واقع هیچ چیز در ارفانهای جدید واقعا جدید نیست بلکه ملغمه یه از عقاید و آینهای باستانی که فقط به درد مطالعه تاریخ باستان می‌خورند. در اینجا شاید بد نباشه که از دو نفر از اقتاب ارفانهای جدید یاد کنیم یه عملی خراب به نام تیموتی بلری و دیگری کلکسیونر اشیاء گران قیمت به نام باکمن راجنیش. اینا از اون ابر بیشعوراییان که بسیاری از بیشعورهای تمام ایار کوچکتر از اونا یاد گرفتن که چطور طرفداران عرفانهای جدید را بدوشن. و این بیشعور ارفانباز، صداگر سیاری که نه به او الهام میشه و نه عقل درست و حسابیی داره، اما تیز و بزه و میتونه با دیدن یه نفر فوری رگ خوابشو پیدا کنه و بدوشتش، یه بار با کلاس‌های مهارت در شهامت و دفعه بعد با سمینارهای تناسخ و مرتبهی بعد همایش‌های کنی. اما تمام اینا سودجویی از سادلوهی سرشت بشریه که منشاء اون آرزوی همگانی ما برای بهتر و شاد کام تر بودنه ورد کلام این افراد اینه که چون خدا همه جا حضور داره پس تمام اون چیزی که لازم انجام دهیم اینه که به این نیروی کیهانی متصل بشیم تا بدین ترتیب بتونیم با هر کجا و هر کسی که مایل باشیم هماهنگ بشیم. اگه پول میخوایم کافیه که با استفاده از این هماهنگی، اون رو به سوی خودمون بکشونیم. در مورد عشق هم به همین ترتیب قادر خواهیم بود که با هماهنگی به خواسته خودمون برسیم البته این نوع طرز تفکر برای بسیاری از مردم شیرین و جذابه، اما بسیار خطرناک هم هست چرا که این امکان رو برای عده‌ای کلاش فراهم میکنه تا آدمای ساده دل زیادی رو خواب کنن و بچاپند. فقط یه بار من فکر کردم که اتفاق بزرگ و مهمی در این ارفانهای جدید در حال وقوعه و اون هنگامی بود که دیدم در شروع یکی از این سمینارها تمام حاضران یک صدا این جمله را تکرار می کنن. تو بی شعور هستی حالی بود با خودم گفتم چه خوب که بالاخره یه نفر پیدا شد که می دونه چطور به دیگران کمک کنه اما مشخص شد که مربی اونا از همه بیشعورتره چرا که تکرار این عبارت در راستای تبلیغ و تلغین بیشعوری به عنوان یک افتخار بود نه بیماری و درمان اون یکی از کتابهای مورد علاقه من درباره باره بیشعوری در ارفانهای جدید زن و هنر بیشعور بودن اثر سیدنی کوانه در این کتاب کوچک به طرز خلاقانه ای این موضوع استدلال میشه که زن یک سری شیوه های عملی بودایی های باستانه که به حال مردم زمانه خود بسیار مفید بوده. اما در حال حاضر به ما هیچ سودی نمی رسونه. ارفانباز بازها وقار و آرامشند. اگر یک نفر استراب داشته باشه، بیشعور باز او رو آروم میکنه و توصیه میکنه که سخت نگیره و در راه ایجاد صلح و آرامش کوتاه نمیاد. برخی از همین آدمها در راه همین هدف مشغول ساختن کمپهای مجهزی در اورگان، مونتانا و سایر جاهای دور از دسترسن و آنقدر مهمات و صلاح مدرن در آن چمپ ذخیره کردن که توانایی آرام کردن یک شورش در نیکارگووه رو هم دارند. در واقع بیشورهای اللفان باز میتونن به اندازه یک بیشورهای مقدس آب خطرناک و حق به جانب باشند در نمونه ای فاجعه آمیز با وجود اون که نام رهبر گروه هم حاکی از بیشعوری وی بود، باز هم مردم از او هماگت می و به گروهش می پیوستند. در نمونه دیگه، کسی که مسئول گروه بود، هدف گروهش رو به رستگاری رساندن جهان اعلام کرده بود و با ارعاب و کتککاری هم که شده از خروج هر کسی که می خواست از گروه خارج شود جلوگیری می کرد. از منظر فردی این بیشورها میتونن مثل هر بیشور دیگری خود رأی و زورگو باشن. مثلا گیاهخوارها میخوان با هر ضرب و زوری که هست دنیا را متقاعد کنن که ادامی زندگی با خوردن گیاهان و ویتامین ها امکان پذیره. در حالی که اگر اونا رو خوب نگاه کنید، حتما متوجه خواهید شد که تقریبا همشون اونقدر نحیف و مردنی که به جای این استدلال ها به یک استیک خوب نیاز دارند. بعضی از اونها هم معتقدند که تصور خلاق راه حل تمام مشکلات زندگیه. فقط کافیه چیزی رو با تمام وجود بخواهی و تصور کنی. من خودم این روش رو امتحان کردم، مدتها پیش با تمام وجود خواستم و تصور کردم که تمام بیشورها جهان در لحظه ای ناپدید شن. تا به حال که هیچ اتفاقی نیفتد یکی از چیزهایی که بیشور های اعرفان باز در آن استادن هنر سرقت تعلیفات و اختراعات دیگران احتمالا به عقیدهی اونا که معتقدن همه چیز از آن خداوند است تنها چیزی که در سرقت ایدهها و حتی ابداعات دیگران و ادعای تملکشون جاگز نیست درنگه. هر چیزی در عرفانهای جدید با سطحی از هوشیاری سنجیده میشه و از خود کردن ایده ها و آثار دیگران همان سطحی از حشیاریه که باعث میشه تا بسیاری از بیشعورهاگ ارفانباز خودشون رو در هر موضوعی صاحب نظر بدونن. کافیه کوچکترین فکری به ذهنشون برسه تا با جفت جور کردن اون با ایده ها و نظرات دیگران کلاس های مربوطه به اون رو برگزار کنن. البته اوج حیجان ارفانهای جدید برنامه نیمه نیم خداگاهه. بعضی از این بیشعور نوار کاستی حاوی موسیقی یا فقط یک سری سر و صدا درست میکنن که لابلاگ اونا پیام های بسیار کوتاهی گنجانده شده که اونا را به وسیله گوش معمولی نمیتوان توان شرید. اما با قدرت نیم خداگاه میتوان درک کرد و قراره با گوش دادن به این کاست ها شخص قادر به قلبه بر دودلی ها و ترس ها ترک سیگار و سکس بهتر بشه. من یکی از این نوارها را به دقت گوش دادم و بررسی کردم اما نتونستم نشانه ای از آن چیزهایی که دربارشون تبلیغ میشه پیدا کنم در عوض این پیام رو یافتم آهای بی شعور سفارش خرید ده تا دی از این نوارها رو بده